رسیدیم به مسئله گاخی در خیرگی، در شگفتی که به ببست و به ما شدن و گیج شدن و بالاخره به خیرگی می نیاز به گستاخی هست این واژه گستاخی در این واژه گستاخی یک تجربهای نگاه داشته شده است که ما امروزه این تجربه را نداریم اون این است که اتصاع بینش وسعت گسترش بینش با وسعت و گسترش هستی با هم دیگران اندیشیدن از خودی خود همراه و هم روش با چی با فراخ شدن و پیشرفت هستی خود می شود این این است که خیرگی به گستاخی کشیده می شود. این مسئله را ما در برای درک این مسئله باید به این دو مقوله پیامبری رسالت از یک خدایی فرستاده بودن از یک خدایی در آسمان و آرمان پهلوان، پهلوانی توجه بکنیم این دو مقوله کاملا متضاد با همان در مقوله پهلوانی اینجور که ما میپنداریم در فرهنگ ایران به زورمندی و کشتیگیری و رضم طلبی در جبهه جنگ کاسته نمی شود پهلوانی بر اساس مفهوم نیرومندی قرار دارد نیرومندی چیست؟ نیرومندی این است که سیبر که خدای آسمان است با آرمتهی که خدای زمین است اینها با هم یک تخم میشوند سیمرغ می میشود می منش میشود هسته درونی تخم در درون زهدان تن میشود تن زهدانی که سیمرغ تخم میشد حالا این دودها اینا تشبیهی نیست اینا شاعرانه نیست اینها واقعیتی است که آنها میپذیرفتند نیرومندی نیرو یعنی یوگ یعنی دو چیز که با هم یک چیز در پیوند با هم یک چیز بشن و به حرکت دارا ورانند و آفریننده بشوند شادی بشوند عشق بشوند موسیقی بشوند با هم دیگر این رابطه با هم دیگر این نیرومندی بود این بود که ههلوانی ایدئال بینش و نیرومندی تن با هم بود برای این خاطر هست که شما میبینید که هم سام هم زال هم رستم اینها رابطه مستقیم با شیمورطارم این را یک کردیم اصلا بزرگترین تجربیاتی که در شاهنامه اثرش باقی مانده است، است این تجربه این است که این سه نمونه پهلوانی در فرهنگ ایران که همیشه سرمشق پهلوانی باقی ماند اینها این است این که پیوند مستقیم با سیمور با ارتا دارند این ای و این فرق دارد با اینی که پیامبر یک خبری یک الهامی یک وحی از خدایی که در پشت هفت آسمان پنهان است میگیرد و خودش را دهان یا بلندگوی او میداند این به کلی با هم فرق دارد این که پهل ایدئال پهلوانی این که از خود خدا که در خودت هست تخف شده اثر خودت از خودت میبینی و از خودت گسترش میابید اصلا معنای هفتخان این از خود گسترش یافتن در اثر رسیدن با چشم خود ببینش هست ببینید اینجا ما با رستمی کار نداریم که تو زورخانه زور ورزی زور میکند اینجا ما با نیرومندی به معنای واقعیش کار داریم. زنیرو بود مرد را راستی که فردوسی میگوید این نیست که ما به طور سطحی میفهمیم می نیرو این هماهنگی اندیشه با هستی هر دو با هم آفریننده میشن نه اینه که من برم قرآن بخوانم یا گاتا بخوانم نه از خود اندیشیدن و از خود رو و گسترده شدن مسئله است با هم دیگر است که امروزه که در دورخانه ها و این من با علی و فلان و این ها شروع میکنن اصل مطلب را خلت میکنن مسئله در پهلوانی از خود اندیشیدن و از خود هستی خود را تن خود را روان خود را گسترش دادن است حالا ما فعلا این است که شاهنامه وقتی که ما معنای دقیق پهلوانی را بفهمیم میبینیم که ایدئالی درست در مقابل پیامبری است ایدئالی غیر از پیامبری اصلا, مخت... اصلا با مقوله زردشت و نمیدونم محمد و اینها فرق دارد این یه ارایه یک پدیدهی میدهد که پهلوان از خودش میبیند و از خودش گسترش میابد این بکلی با ایده رسالت و پیامبری و مظهر ظهوری و نمیدانم تمام اینها در این ادیان نوری متداول است فرق دارد شاهنامه را نباید به دست یک عده این عدبیاتشیه داد که رستم و اینها را به یک عده افسانه های بیهوده و پوچ و کشتگیرها و رجزخان تقلیل میدهند جدا ساختن اتصاع بینش یعنی اندیشه گستری از اتصاع هستی یعنی هستی گستری بی ارزش ساختن و پوچ ساختن بینش و اندیشه و هستی هر دو هست گسترش اندیشه بدون گسترش هستی نیاز به گستاخی ندارن میبینید این امروزه این اینهایی که دم از عقل می همه در خدمت این قدرتمندها ها در آمدن و فقط در حمایت آنها در پخش افکار آنها سایه هستند به اسم این را عقل میگذارند. هر قدرتی که سرکار آمد شروع می کند به عقل مردم را عقل گرام می مرد این با این عقل درست مانع این از خود اندیشیدن و از خود شدن و فراق شدن و گسترده شدن اندیشه ای که از هستی گذست لاف و ادعا و دروغ و هیلگری می شود لاف زدن و گذاف گفتن و اندیشیدن و آموزه های غالبی از این آن توتیوار یاد گرفتن بیانه چی هست؟ بیانه از هم شکافته شدن از هم پار شدن هستی زندگی ما از اندیشه این مسئله بنیادی ما همین است که هستی و زندگی ما از اندیشه ما بوریده شده است اینقدر دم از تجدد و مشروطیت و اینها میزنند همه مسئله به این برمیگردد که اینها ناکام میمانند چون که زندگی و هستی ما از اندیشه ما پاره شده است. حالا همین مفهوم را اتیاد ما به صدها کتاب نداریم همین در خود همین واژه گستاخ این اندیشه باقی مانده است گستاخ در پهلوی ویستاخ است وی تبدیل می‌شود است به گ می‌شود است گستاخ این این واژه در اصل چی بوده است در اصل ویستا اخو ویستا اخو یا اینی که در زبان هخامنشی ها ویستا اووا او یعنی او آی تخمور اگ ویستا اخو اخو ما جلوتر بحث کردیم که این همون تخم و همون اکو هست اون وقتی بیستا که همون واژه 20 ترتن یا گستردن همین واجه است. که معنیش میشه چی یعنی اخو را استردن اخو که اوها باشد تخم هست. این تخم اوها خود را اوها آی آی در انگلیسی ببینید آی هم معنای تخم دارد تخم هم معنای من دارد این درست یک هم معنای تخ دارد هم اگو یعنی من یعنی خود پس بنابراین این باجه ها همه در اجک ریچند این گسترش خود گسترش تخم درون خود پس گستاخی ببینید خیلی قشنگ در خود واجه گستاخی به معنای پخ شدن پخ شدن و یا گستردن اصل زندگی اخو اخ اخو اصل زندگی اصل پرسش است ارکو اصل تعجب است اصل خیرگی اس گسترش است گسترش خود و از خود چی است است که گستاخی گستاخی گستردن گوهر یا توپ یا بند در خود و از خود است. ببینید مسئله تخم رو فراموش نکنید تخم در فرهنگی ایران خالق ندارد این مفهوم خالق و اهور و الله و اینها بعدش آماده تخم مفهوم اصالت داشته است. یعنی از خود بودن کلمه خدا و خود و اینها اینها همه بیان از خود بودن از خود پیدایش یافتن معنای نیست که یک کسی ما رو خرب کرده است اصلا این مفهوم درش نیست این از خود گسترش یافتن گستاخی حالا آره. گستاخی بیست ویستاخوی ویستا این امروز معنای بسیار تنگی و نسبتا منفی به اون داده شده ولی در اصل در حال همون پهلبی هم دارای معانی چی است یکی اطمینان هست یکی سمیمیت هست یکی اعتماد است ببینید اعتماد و اطمینان یکی بیاری کسی پشت پشتگرم بودن است گستاخی اطمینان و اعتماد در اصل گستاخی اطمینان و اعتماد به فرد خود و یقین از گوهر بونو خود داشتن و با سمیمیت و دلیری خود را گستردن و گشودن بوده است این اخو ببینید این بونه پیک این بهمن این هوما تخم در ماست ما این به این ایمان اطمینان دا داریم این یقین از بن خود داریم کسی که به هبتخان اخوان اخوان میرود درست برای گسترش خود و گسترش اخو یعنی اصل حیات عکو یعنی اصل شگفتی و دایگی میرواد او میرواد با درک شگفتی ها خود و اصل زندگی یا جی خود را جی زندگی خدا در جهان هستی بشکوفوند به آب و آتش گستاخ در رود به آب و آتش گستاخ در رود گویی سمندر است در آتش در آب در آب ماهی وال با آب و آتش گستاخ در رود. گویی سمندر است در آتش در آب ماهی وال حالا شما یاد بیاد بیاریم که شنای رستم در دریا و جنگیدن با با یک دست با نهنگ ها می با یک دست شنا می کنه هنگامی که اکوان یا اصل پرسش اصل شگفتی ناگهان او را پس از اینی که در میان زمین و آویخته است در دریا فرو میاد کنه ببینید این نماده دویندگیش شنهای رستم در دریا این اخگستاخیش زندگی برخورد همیشگی با ناگهانی ها با شگفتی ها یا با تصادفات است از این رو باید از اخو در خود اخو در خود اطمینان و یقین تداردار ناپذیر به این اتکاب کسی دیگر نیست این فرق دارد من تکیه میکنم من این انسان تکیهگاه ندارد انسان اخو دارد بونه گیتی در همه رویدادها زاده زمان و شگفت‌انگیز و خیره کننده هستند این ببینید این فلسفه ایرانی فوق العاده مهم است این فلسفه زارزر هر رویدادی یک هنگام است هر عملی نیاز به اندیشیدن در هنگام و تمیز دادن جی و عجی زندگی و ضد زندگی در همان هنگام و گزینش دران هنگام است عمل را نمیتوان طبق یک قاعده کلی یک تئوری یک روشنی و آموزه همیشه روشن در همه هنگام ها انجام داد درست ببینید این اندیشه در مقابل آموزه زردشت و سایر ادیان نوری قرار میگیرد اونها نیکی را تابعه هنگام نمی کنند نیکی و بدیر و تابعه شناختن خود از هنگام و شناختن در هر هنگامی جیب و عجیر را از همدیگر دیگر هنگامی همه پیشامت ها ناگاهانی و حساب ناشدنی و طبعا شگفت آور و خیلی کننده هستند فقط میتوان به اخو در خود اطمینان داشت که انسان را گستاخ هر رویدادی هر رویداد شگفت‌آوری را باید جدا جدا شناخت و جدا جدا راه بیرون رفته از آن را گذید و همه رویدادها را همانند هم نکرد و برای همه قاعده کلی و یک نواخت نساخت هر روز ایران را با یک کشور دیگر مقایسه نکرد یک روز با آمریکای لاتین یک روز با فرانسه، فران، یک روز با چکوسلوواکی، یک روز با بلژیک که قوانینش رو شما بگیرید، این قوانین رو عین آنها رو کپی کنید. قانون اساسی ایران قرار یا ببینید در فرانسه و فرانسه کار رو کردن. همون قاعده کلی درست کنید که در ایران هم باز همین کار کرد اینها همه علامت است که ما با خرد ایرانی آشنا نیستیم. خرد برای شناخت هنگامه نمانند عقل است که قاعد شناس است و به تصاوی و همانندی چیزها و رویدادها قائل است نه خرد هنگام شناس است سب... یکی از نقاط یکی از سوها رویهای های اختراف خرد با عقل خرد برای شناخت هنگام است خرد همیچه زایشو در هنگام زال با فرد رستم یا با هر فردی شخن میگوید ببینید اینجا مسئله فرد کره هست فردیت را در جستجو بنیاد استقلال در بینش میداند در جستجو فردیت به وجود میاد فردیت میروید در جستجو بنیاد استقلال در بینش می و فرد پیداش می کند و انسان فردیت می آمد کسی که خود نمی جوید فردیتش در آمه قرد می گرده می شود توده کسی که خود نمی جوید می شود عوام می شود توده و کسی که میگوید از عوام بودن از توده بودن نجات یا می فرض میشود هرچه انسان بیشتر با دیده مردم یا بیدیده مرجع تقلیل میراه میره و زندگی میکند از فردیت خود میکند و بر عوام بودن بر توده بودن خود می میفضاید ما در ایران با عوام سر و کار داریم تا اینها عوام هم فردیتی ندارن دموکراسی بر فردیت, فردیت بنا میشد. باید خودشون بجوین تا بتوانا رای بدهند وقتی رای دادن تا به مرجع تقلید باشد تا به تبلیغات باشد این هیچگونه امیدی به آزادی ما نداریم ولی کار فرد آن است که در تجربیات خود به روشن کردن همه چشم‌ها و خردها نیز بیاندیشد ولی قیادت بر آنها را نجوید درست ببینید این مفهوم رند حافظ در انتقال بینش خود به دیگری تابعیت و اطاعت از دیگری نخواهد او خرد دیگران را به کار میاندازد تا خودشان بیاندیشند و از رهبر و پیشوای دیگران شدن میپرهیزد و داستان هفت‌خانه رستم درست برای این اندیشه بنا شده است اینها که این بر کل که این با کل تفکرات که امروزه در ایران حاکم است رهبرین هم آخوندها یا چیزهای کرد و با کل این مخالف است شناخت شگفتی ها در رویدادها و اندیشیدن در هنگام و گزینش جدا جدای نیکوبت اصم در هر هنگام نبوغ هر انسانی را میانگیزد و او را آبستن می سازد خرد چیز خرد در هر فردی در آبستن شدن از تجربه در هنگام به خود می آید. ما باید از تجربیات در هنگام آبستن بشیم نه اینکه فوری پوری برابیم به سراغ کپیه کردن این کپی کردن مثل این است که شما یک بادکنک به شکمتان دان ببندید بگوید من آبستانم این عقیم کردن خودش، این آبستان شدن نیست در برخورد با رویدادها و عمل طبق قاعده ها و آموده های شناخته شده یا عمل طبق شریعت و یا ایدئولوژی که اسم خودش را همیشه علم میگذاره پیروی از کوری رفتن با دیده دیگران هست. گستاخی یقین از جوچش و زهش زهش اخو در جرفای حرفت با حدخان رستم و با گستاخی در رفتن با دیده خود بنیاد فلسفه فردیت در فرهنگ ایران گذاشته شد این حدخان اصل فلسفه فردیت رو در ایران گذاشته است. اصل آزادی فردی را در همین حدخان گذاشته است و ما اینها را همه نادیده میگیریم فرد با چنین اخو در گوهر خودش هرگز به خیال چنین اندیشه نمی که صاحب افتاده است که میگوید نه از منزل نه از ره نیز همراهان خبردارم من آن کورم که رهبر کرده در صحرا فراموشم که امروزم در برون مرز همه دم از یافتن رهبر میزنن. من آن کورم که رهبر کرده در صحرا فراموشم ماها همه همه میگویند که شما همه کورید و فقط شما رهبر شما را فراموش کرده از جا شما باید یک رهبر پیدا کنه ببینید از سر داستان ترد پرهنگ ایران اخو در گوهر او او را هرگز فراموش نیکنه و حتی این اخو در گوهر انسان این چیز فراموش شدنی نیست. این مایه وجود اوست حتی در قفس و زندان حتی در خفقانی که ادیان و اید های حاکم برای اجتماع ایجاد میکنه از وجود و همین اخه، اخو پروبال می رویاند که با آزاد شدن از این زندان ها خطر هیچگونه گرفتاری تازهی در پیش نیست ببینید این از قفص بیرون آمدن از تنگنای رژیم اسلامی از تنگنای رژیم شاهی بیرون آمدن خطر دارد چرا؟ چون که پروبال ما را قیچی کردن پروبال خرد را قیچی کردن وقتی که از قپس بیرون اومدید یه مرغ هستیم که فوری، چون که بدون پروبار هستیم فوری ما را میگیرم پوری در دام میفتیم فکر آزادی به قول صاحب فکر آزادی گرفتاری به دام تازه ایست. ما که خود را در قفس بی بال و بی پر ساخت امروزه نه تنها رژیم های خفقان ما را بی, بی بال و پر میسازند ما در خارج یا بال و پر نمی دانم کانت و, هگل و چون و فلان و فلان رو بر خودمون میبندیم یا بال فیلسوف های نیمچه و درجه چهارم را بر خودمون میبندیم و وقتی یا هنوز مارکس را به عنوان بال بر پدن خودمون میبندیم با این بال و یا اینی که ما با این با این افکار نمیگذاریم بال و پر خود ما برود بال و پر ما این است که خرد ما برود خرد باید بال در بیارد با چشماندن بال و پر بر خود که خرد روش نکرده است که این است که فکر آزادی همیشه خطرناک است ما از رژیم شاهی که خود را نجات دادیم اگرچه هیچ فکر آزادی نبودیم ولی بی بال و پر بودیم یک چیز خیلی است که ما از اون قفس که بیرون آمدیم خواه نخواه در دام میفتیم و افتادیم اسلام و ایدئولوژی‌های دیگر ما را در قفس اجتماعی من بی بال و بی پر ساختند و بی بال و بی پر همیشه می سازند و آزادی فقط سراغاز به دام های تازه و به دام های دیگر افتادن است تا این بال پر خرد ما نروید اقدام با آزادی همین که با خطر این روبروس که ما این مرغ بی بال و پر که از قفص بیرون اومده یا گربه میخوردش یا شغال میخوردش یا به دام میفتند برای آزادی باید پل و بار داشت ولی همه ادیان و عقاید و ها و هایی که همش بعد از علمی بودن و دانشگاهی بودن میکنند بال و پار خردها را در قفس اجتماع خود کوتاه میکنند تا اگر روزی مرغ از قفص به هوای آزادی بگریزد نتواند بپرد و دود بتوان او را گرفت امروزه همه تبلیغات چه در برون مرد و چه در درون مرد متمرکز در قیچی گردن پروبال خردهای مردم. اونها میخواهند فردا که به قدرت رسیدن همشون همه این گروه ها این تبلیغات برای میخوان به قدرت برسند؟ فردا که به قدرت رسیدن آزادی پرواز به کی میاد؟ بله آزادی میدن به مرهان بی بال و بی پر اینها حق دارند آزاد بشن من و شمایی که نمیتوانیم پرواز کنیم بی بال پر حق داریم پرواز بکنیم قفس خفقان و تعصب و استبداد را هنگامی باید شکست که خرد مردمان بال و پر درآورده است هنگامی خردها بال و پر پیدا می هر قفسی را خودشان می شکنن هنگامی خردها بال و پر پیدا کردند، خودشان هر قفصی را می و همه مرجعیتها را قفس می همه رهبرها را قفص می گستاخی گوهری برای آشنایی یافتن سخت نزدیک با اسرار و نهانی هاست که این این اونچه نهوه است این اسرا این هستند همون اخو که اوراق وجود ما را به هم شیرازه میکنه شیرازه کردن به هم بستن از اوراق, از اوراق زندگی ما یک کتاب درسته نمیگیرد به خود چیرازه اوراق وجود من نمیگیرد به خود چیرازه اوراق وجود من عوض گه رشده، گه تسبیح و گه دونار من به عوض خیال میکنم کنم با این عقاید با این کفر دین ها میتوانم توانم اوراق وجود خودم را شیرازه کنم نه اینها ها شیرازه نمی کنند اینا به هم گستاخیه اخو در گوهر ماست که اوراق جدا جدای روی ها را در زندگی ما شیرازه می کند. و به هم میبندد و به به زندگی به ساعت و گشادگی بیمیبخشد زندگی زمان پیوسته به هم از هنگام ها و رویدادهای بریده از هم بگرده گستاخی بیپرده و سریح بودن بیپروا بودن است این برایندها همه در پدیده خیرگی هست ببینید این خیرگی رو چقدر شت کرد. این ویژه این واژه خیرگی را در فرهنگ که یکی از پر ارزشترین واجه واژه ها بود چقدر ش کرده؟ این گستاخی بی پرده و سرش بوده. این برای ها همه در پدیده خیرگی هست که ده دهطبعا، ضد مرجعیت های قدرت و دین و اقتصاد و قضاوت در, در اجتماع می باشد و از این رو این برای گستاخی و خیرگی سبب می شود که هر دو از این قدرت ها به شدت نکوهیده و زشت ساخته می شود و معانی منفی بدان داده می شود